در کتاب شریف کافی هست که شیطان یه موجودیه در قرآن این مطرح شده یه موجودیست که واقعیت داره تخیلی نیست برای سیناریوی مثلا پیش بردن این عالم یه چیزی رو هم به نام شیطان فرض کرده باشه خدای متعال اینجور نیست شیطان یه واقعیتی داره هستیش حتمیه، میه نامرئیه ظاهری اصلا پیدا نمیکنه تجسس در مثلا موجودی حیوانی یا به ظاهر انسانی اگر در داستان هم داره که شکل مثلا انسانی پیدا میکنه، اون تماس در کافی شریف داره که این موقعی مسا ای کلیم علا نبی نوی و علیه علی نشسته بودن دیدن که یکی یه لباس بلند و سرپوشی که علوان و بسیار زیبام هست اومد و دست یا صورت حضرت مسا رو پوسید بعد بلند شد دور شد از حضرت و اون لباس رنگارنگ رنگ و زیبا رو از روی خودش کنار انداخت. حضرت پرسید تو کی هستی گفت من شیطان هستم. نفلی نشکرد حضرت که خدا انشاللہ تو رو دور کنه از باب خدا و خانه خدا. چون به خانه پیغمبر خدا بود حضرت فکرین کرد که خدا ان از من تو رو دور کنه و از این خانه دور کنه ولی یک سوالی دارم حالا که اومدیو داری میری سوالم این هستش که چطوری میتونی نفوذ کنی در قلب انسان ها و این که مهمترین و بزرگترین گناهی که باعث میشه استحوذت علی، استحوذت علی، اون چیه؟ چه چی گناهیی که باعث میشه تو تسلط و چیرگی پیدا کنی بر انسان ها؟ دیگه چون پیغمبر خدا سوال کرده بود، لو داد، میگه که یکی از چیزایی که باعث میشه من مسلط بشم بر قلب یک انسانی عجبه. اینکه خودش رو برتر ببینه. کارهای خوبش رو دلیل بر برتری خودش بر دیگران ببینه. عج که از صفات بسیار محلهکی برای کسی که، برای خودش رو بالاتر می‌بینه و اعمال خیرش و کثرت اعمال خیرش باعث شده که خودش رو برتر از دیگران ببینه این بهترین جای پا برای تسلط شیطان و هم فرمود که دیگه چی شیطان گفت اینکه سخر پیینه ای زنبه. گناهش پیشی چشمش کوچیک باشه. گناهان رو چیزی نبینه. خدا بزرگ آلومایه کار زیشتی هم انجام دادیم. خدا میبخشه. باز ظه کرار کنه. و کم ببینه گناهان خودش رو و مخالفت فرمان خدا رو چیزی ننگارد این ها مهم شیطان هست برای اینکه تسلط پیدا کنه یه نکته مهم باز این هستش که شیطان وسوسه می کنه و این وسبسهش به تنهایی هست هیچ عملی و هیچ حرکت و سکونی برای وادار کردن انسان به گناه انجام نمیده در قلب انسان میاد و وسوسه میکنه انسان رو با میداره و متمایل میکنه به سمت بدی ها این یه نکته ایست اینکه در مثلا فیلم ها یا جایی برای اینکه فیلم وردار و کارگردان بتونن یه نمودی از شیطون نشون بدن مثلا اومده پیش انسان با تمثل انسانی اومده به شباهات انسانی اومده خب میخواد یه چیزی نشون بده بالاخره و دوم اینکه او رو وا می‌داره به کارها که نه مثلا در عمل دستشو میگیره به کارهای بد وادار میکنه نه از قلب نفوذ میکنه منتها نکته ای که اینجا خیلی مهمه اینه که وصلسه شیطان از خارج قلب به وجود میاد زمینه وسوسه قلبی شیطان در انسان از بیرونه یعنی چه یعنی اینکه در بیرون و در خارج کوچه و بازار و در واقع و عین بیرونی مسائلی رو قرار میده که از بیرون انسان چاف وسوسه درونی و قلبیش انسان رو خودش درست میکنه مثلا نامهرم رو جلو می انسان قرار میده انسان اگر خودش اختیار کنه نظر کردن و نگاه کردن رو او دستش باز میشه برای واساسی قلبی انسان پس ببینید میخوام این نتیجه رو بگیریم که اگر ششه از قلب انسان وسوسه رو انجام میده اما زمینه و مقدمش از بیرون هست خیلی مهمه خیال انسان وقتی درگیر گناه میشه که از بیرون یه چیزی رویت کرده باشه شنیده باشه لمس کرده باشه از حواس خمسه و حواس پنجگانهش استفاده کرده باشه، زمینه و مقدمه گناه رو ایجاد کرده باشه که شیطان بیتونه در قلب به وسیله اون وسبسه خودش انسان رو به انحراف و تمایل به گناه رو در قلبش ایجاد کنه این نکته خیلی مهم نیست ما اگر بخوایم واقعا مقابله با شیطان داشته باشیم و نگذاریم که او در قلب ما وسبسه ایجاد کنه زمینه های کار او رو باید کر کنیم مقدمات وسبسه او رو باید از بین ببریم و این از بیرون هست از بیرون وجود ما هست از همین حرکتها و رفت آمدهای ما هست در کوچه و بازار در میان منزل برکوردهای که با زن و بزشه این ای که با مردم عادی، پامید، بستگان و همه اون که زندگی ما رو تشکیل میده به ظاهر میتونه انسان با اختیار خودش جافای شیتون رو کور کنه و یا نعوذ بالله با تمایل به مقدمات و زمینه های گنات جافای شیطون رو در قلبش باز کنه و بیاد و بس, بس رو انجام بده. پس این که اینکه می کنه شیطان حتما حتما زمینش دست خود ماست راه انسان عادت کرده به ایجاد زمینه و عدم توجه به جافاهای شیطان فکر می‌کنه او داره وسپسه می کنه او وسوسه می می‌کنه، اما ما با اختیار وسپسه شیطان برای خودمون ایجاد کردیم